توی زمانهای قدیم راستنی بود به اسم جاندو که توی اطراف و اکناف معروف شده بود. توی منطقه زندگیش جایی وجود نداشت که از سرقتهای اون جون سالم به دربارده باشه. اون اونقدر با دقت کارش رو انجام میداد که هیچ وقت مدرکی برای دستگیری به جانه جاندو قدرت عجیبی داشت و حتی میتونست زبون پرنده ها و حیوان های دیگه را هم بفهمه. همه اون رو به اسم جاندو جور میشناختن. یعنی جاندو ی دوست. توی اون زمان توی کشوری نزدیک به این سرزمین یه حاکم به اسم جاکور زندگی میکرد که نه تنها توی شهر خودش، بلکه توی سرزمین های دیگه هم به خاطر شجاعت و تیزهوشیش زبون زده خاص و آم بود. به خاطر همین هیچ دوزی جرأت سرقت توی قلم رو اون را نداشت. حتی دو هم توی این کار شک داشت. ولی بالاخره یه روز تمام جانعتش را جمع کرد و به طرف قلم روه جاکور براه افتاد. توی راه به یه بازرکان برخورد که با اون هم مسیر بود. بعد از سلام و ادب با هم دیگه بازرکان اسم و منظور سفر اون رو پرسید و به محض اینکه اون رو شناخت مثل بید شروع به لرزیدن کرد. ولی جاندو به اون قول دوستانه داد که کاری به کارش نداشته باشه. درست توی همون موقع یک کبک از لابلای بوتهی سر و صدا کرد. جاندو با زبون کپکی با اون صحبت کرد. توی همین موقع بود که بازرگان تعجب کرد و از اون خواست تا موضوع رو براش تعریف کنه. جاندو گفت کپک به من گفت که تو یک کیسه که صد تا سکه طلا داخل اونه پشت یکی از علاقات پنهون کردی. بهتره که اون کیسه مال من باشه. ولی من به اون گفتم که ما دوتا دوست هستیم و جاندو هیچ وقت از دوست چیزی نمی دزده نفس راحتی کشید ولی توی یه فرصت مناسب کیسه رو از پشت علاق برداشت و دور کمر خودش پنهون کرد. اون هنوز کارش رو تمام نکرده بود که یه شقال از پشت بوته صدایی در آورد جاندو با زبون شغالی با اون صحبت کرد بعد با اصرار زیاد بازرگان گفته های شغال رو براش ترجمه کرد شغال به من گفت که تو به من اطمینان نداری و کیسه پر از طلا رو دور کمرت پنهون کردی اون میگفت که بهتره تو رو بکشم و طلاها رو به دست بیارم ولی من به اون گفتم اگه کسی یک بار با جاندو دوست بشه، اون هیچ وقت دوستش رو نمیکشه یا پولش رو نمی دوسته. هر چقدر هم که طلاهای زیادی همراهش باشه. بازرگان از کارش خیلی شنمنده شد. آخه اون قسم جاندو رو باور نکرده بود. بعد از التماس از اون طلب بخشش کرد. جاندو اون رو بخشید و از اون موقع به بعد اون دو دوست همسفر با همدیگه سمیمی خودمونی شدن بعد از گذشتن چند روز اونها قلعه پادشاه جاکور رو از دور دیدن دو دوستش رو ترک کرد و از اون قول گرفت که ورود اون رو به این قلم و فاش نکنه جاندو که تقریبا مطمئن بود با زرگان زیر قولش میزنه با تنفر هرچه و تمامتر وارد شهر شد درست بعد از جدایی دو دوست بازرگان سریعا پیش پادشاه جاکور رفت و ورود جاندو رو به اون گزارش داد و اضافه کرد که اون قصه شیطنت و سرقت داره. پادشاه تصمیم گرفت که شخصا مراقب اوضاع باشه و موقع شب دروبر شهر بگرده و دست جاندو رو رو کنه و اون رو به دام بدنزه. بعد از غروب آفتاب وقتی که بازار تعطیل شد همه توی خونه هاشون بودن جاندو مسافر خونه رو ترک کرد اون پنهونی و دوزدی از ای به کوچه دیگه می‌رفت تا شک مامورا رو جلب نکنه توی راه به یه مرد برخورد کرد این کار با اون همکار بود ولی از اونجایی که توی قلم جاکور دزدی وجود نداشت جاندو حدس میزد که این مرد باید یکی از نگهبانای پادشاه باشه و با اولین موقعیتی که به دست آورد شروع به کتک زدن اون مرد کرد و با چاقو اون رو تهدید کرد. اون میخواست اسم و رسم همکارش رو بدونه. مرد کسی جز پادشاه نبود. پادشاه با صبر به اون جواب داد من دوزی هستم که از زمان تاجگذاری جاکور تا الان نتونستم کوچکترین دست بردی به اینجا بسنم امروز از یه بازرگان شنیدم که جاندوجور معروف توی شهره من دارم دنبالش میگردم تا بتونم به کمک اون بعد از گذشته چند سال یه دزدی حسابی بکنم اگه اشتباه نکرده باشم تو همون جاندوجور هستی اینطور نیست؟ مثل اینکه تو خیلی باهوشی من همونم رو باور کن از دیدن تو خوشحالم. حالا کارمون رو چطور شروع کنیم؟ پادشاه اون رو به طرف خونه نیست ثروتمندترین بازرگانی شهر برد. از دروازه های خونه خوب مراقبت میشد. این نگهبان هم مواظب امارت بود. جان و سراغ نگهبان رفت. اون رو گرفت و خوب بست و به دست همکارش سپرد و آروم وارد خونه شد. فکر می کنید اونجا چی پیدا کرد؟ اون توی خونه وزیر زیر نور ضعیف فانوس مرد چاقه رو دید که روی کاغذ هاش خم شده بود و حساب و کتاب می کرد. اون به کاغذ ها نگاه می کرد و پول ها رو می و نفس راحتی می ولی یهو یه توی حسابش یه روپیه کم رو به دفتر ها نگاه کرد. دوباره حساب کرد. ولی نفهمید. چرا یه روپیه کم آورده؟ هر از گاهی زنیش میومد و اون را برای شام خبر میکرد. اما مرد میگفت نه. و حتی اون رو برای اینکه مزاحمش شده سرزنش میکرد. آخه همه این کارها فقط برای یه روپیه بود. جاندو به آرومی از خونه بیرون اومد. دوستش که اون رو دست خالی دید با تعجب علت رو پرسید. جاندو گفت مردی که داخل خونه است واقعا ی آدم بدبخته. اون از خوابش میگذره و از اعصاب شامش هم فقط برای یه روپیه میگذره. اگه من چیزی از اون بدزدم ممکنه سکته کنه. من نمیخوام باعث مرگ کسی بشم. بهتر منو به یه خونه دیگه ببری. پادشاه اون رو به طرف خونه جواهر دربار دربار برد. دوباره جان دو باره جاندو داخل خونه شد و بعد با دستی پر از خونه بیرون اومد و برای بار دوم داخل خونه شد و این بار کورمال کورمال دنبال اجناس میگشت که دستش به یه ظرف سفالی خورد. در ظرفو باز کرد و دستش رو داخل اون کرد. چیزی آردمانن داخل اون بود. وقتی دوست دستش رو بیرون آورد بی اختیار انگشتش رو به دهنش برد. اون چیزی که داخل ظرف سفالی بود نمک بود. جاندو پیش دوستش برگشت و کیسه پر از اجناس و برد و به جای اول پرگردند و دوباره دست خالی برگشت. دوست جاندو که این صحنه رو دیده بود با تعجب از اون پرسید: «دوست عزیزم چرا این کارو کردی؟ آخه من حالا نمک این خونه رو اشتباهن خوردم. دلم نمیخواد با دزدی خودم نمکدون بشکنم. بیا بریم جای دیگه شانسمونو امتحان کنیم. آخه فکرش رو بکن چرا باید اینور اونور پرسه بزنیم؟ چرا اصلا قصر پادشاه رو نزنیم؟ من رو اونجا ببر. آخه اگه اون یک کم از ثروتش رو از دست بده، لااقل شبا خوابش میبره. نه؟ به این ترتیب جاندو به قصر رفت. توی راه پادشاه به اون گفت که چهار تا شمش طلا زیر تخت خواب پادشاه پنهون شده. بردن اون طلاها ها واقعا دل و جرأت میخواد و اینطوری به پادشاه درس خوبی داده میشد. جاندو فورا موافقت کرد. وقتی اونها به قصر رسیدن، خودشون را از دید نگهبانها پنهون کردند و از سایه درختها استفاده کردند و داخل قصر و اتاق مخصوص پادشاه شدند. شمش های طلا حتی توی تاریکی شب هم میدرخشین. به محض اینکه وارد اتاق شدن یه سگ عزیمون جسته از زیر تخت بیرون اومد و با صدای بلند پارس کرد. پشت سر اون. یکی دیگه هم اومد جان میتونست زبون اونها رو بفهمه که به هم میگفتن اینم از جان دو جور بیشک اومده تا تله ها رو بدوسته پس مراقب باش اون یکی سگ جواب داد خفش و احمق جان نمیبینی که ارباب هم با اون اومده پس چرا بی خودی هنجارت رو خسته میکنی جان تو که این رو شنید به طرف همکارش برگشت و از کرد و گفت جاندجور از بودن شما با اون توی این شبه سمیمانه تشکر میکنه. کانال تلگرامی هزار افثان داستانهای افثانه ای نشانی کانال تلگرامی تی می مهران دوستی تی ام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 مهران کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت محمد جواد بوستانی